عشق فرات بود زمشگت چکیده بود به قرآن تو هم یه بیت حرف دارم اشک فرات بود زمشگت چکیده بود یا خیسی خجالت دست بریده بود <تصفيق> چی بود؟ <تصفيق> یک تیر لا لا الله یک تیر شمش از دل مسجد تو باز کرد یک تیر شمش از دل مسجد تو باز کرد یک تیل لالا لالا یک تیر چشم از دل مج بازگرد یکی تیر ااش چشم تو از هم دریده بود از بس که چقدر لطیفه از بس که یوسف حسن خودت شدی چشمت خبر نداشت که دستت بریده بوده. چشمت خبر نداشت که دزدت بریده بود حی علل اهل شعر تحویل بگیرن حی علل فلاه تو ادرک اخا شده در زهد رکعتی که قیامت خمیده بود برداشت با تلاوت بوسه در آن با تلاوت بوسه در دمی دستش مگر به پاره قرآن رسیده بود ای وای دیگر زبان دیگر زبان تشنگیش بند آمده حتما سکینه واقعه ها را شنیده بود پرده خیمه رو کنار زد یه نگاه کردید اموی گوشه نشسته بچه بیاد تو اینجا خیمه عموم عباسه اینجا خیمه صدقای لشکه اینجا کسی بیاد تشنه بیرون نمیره بشک خالی ها رو بردن. نمیدونم این صحنه نتونست دیگه عباس تعمل کنه یا اون صحنه این که روایت میگه شکماشون رو خاک گذاشته بودن بالاخره دیگه نتونست تاب بیاره بلند شد مشگار و اومد جلو حسینی صداد. یا سیدی و مولای دیگه سینم تنگ شده از صدری و قلت حیلتی دیگه عباس تاقد نداره دیگه نمیتونم سب کنم بذا دیگه برم ابی عبدالله یه نگاه مهربانانه ای کرد از اون نگاهی که دل عباس و برد خجالت کشید جید سرش و انداخ با این انتصاحب و و سبر تفعادی تو صاحب لوای منی تو علم دار منی تو پشت و پناه منی کجا میخوایی بری اگه بری حسن چه کنه بچه هم چه کنن اگه می بینی تو الان کسی جرعت نکرده نگاه کنه به خیمه ها چون تو عباس دارم مثل تو عباس دارم میخوای بری برو ولی برا جنگ نه میدونه حسین عباس بزنه به قلب لشکر کسی میمونه مگه چارزار تیرانداز که سهل بود آخه یه نفر چارزار نفر کجا میتونید پیدا کنید بابا با یه خودکار روی لا اله الله با یه خودکار روی بدن هزار تا خط بکشید یکه جانه میشه دیر غلامان و کرای قدیمی گوشه کنار دارن گریه میکنن به گریه شما ما جوونا گریه کنیم میخوایی بری برو ولی برا آب گوش بده ببین بچه هم دارن ناله میزنن چشم آقا میخوای بری برو ولی تنها نه نمیتونم به ایزدم من باید با تو بیام آقا جان چی میفرمایید عباس تو از میمنه لشگر میری سمت شریعه فرات من از میسره لشگر میرم از نظر تکنیک جنگی حواس دشمنو به خودم پرت میکنم تو راحت بریسم تلغمه اما عباسم من نگرانتم باید منو از حالت با خبر کنی من باید بدونم الان عباسم در چه حاله خدای این دوتو برادر بشم عباس رسیدی شریعه فراد یه تکبیر میگی یه رجز میدی بعضی ها تکبیر وزید یا رجز رجز صحیح جره رسیدی شریعه فراد یه رجز میدی از این ور میدان حاصل زیاد کربل و رفته ها میدونن منم جواب تو میدم مشگار و پر آب کردی رجز بعدی رو میدی من خیالم راحت بشه اگه برگشدی اغب سمت خیمه ها رجز آخر رو بده خدایا کمکم کن نفس بده من این روزه رو تمام کنم امشب از هم جدا شدن مثل باد خودش رسول کنار شریم یه نگاه به آب کرد ز خاره برایت پیام ها برگر. ای آب حسین تشنه است نگی نگفتم آب. فردا جلو تو میگیرم ز شیرخوار برایت پیام آوردم پیام داده که ای آب غیرت تو کجا نگاه نکن تقلا نکن الله اکبر بابا اینو تو ذهنمون بسپاریم نگیم رفت آب بخوره بعد یاد تشنگی حسین افتاد یه اهل دلی یه عارفی میگفت اشتباه اعرابی تو مقتل نفذکره اتشال حسین فذکر اتشال حسین اشتباس فذکر اتشال حسین یه تشدید عقب و جلو بشه معنی زمین تاسمو تا فرق میکنه فذکر اتش الحسین یعنی تشنگی حسن یادش اومد مگه یادش رفته بود که یادش رو مگه میشه اب با صدایه الاتش بچه ها رو یادش بره فذکر اتش الحسین اشتباهه فذکر اتش الحسین یعنی به آب تذکر داد با حسن تشنگیه تو داری موج میزنی بچه حسین دارن الاتش میگن؟ از اکره اتشل یاد آب انداخ گفت تقلا نکن به جان فاطمه هرگز سرانه می نوشم تو موج زنی و تشنه یوسف زهرات صدای ناله یعقبی منو جون میده یه مرتبه یاد حسین افتاد الان داداشم منتظره دستهی دریشو گذاش رو گوشش میخواد رجز بده خداد به شم آقا چی بگه دیدن یه صدای حیدری بلند شد ابن علی ابن عبیتا میخواد جواب بده انا ابن محمد ال المصدفا جان جانم بینالت حسین هم رجز داد هم اتمام حجت کرد آی مردم منو نمیشناسید. من همون حسینیم هم که پینم لبامو میبوسید گلومو میبوزید. گلوم و میبوزید عباس مجگا رو پرهاب کن ای وای ای وای بخاط سوار اس بشه دوباره رجز بده لا اله الا الله انا ابن حيدر الكرار یا انا علی انا المرتضا من موندم روزه من همی جمله صادقه جلوتر نمیتونم برم ای وای میمیرم اینجا حسین جواب داد اما من میگم ای کاش جواب نمیداد جیگر عباس آتیش گرفت میدونی حسین چی جوری جواب داد عباس گفت ابن علی نلمرتزا حسینم جوری جواب داد انبنو ابن از <تصفيق> اینو من میگم آ. من میگم شاید میخواست عباس درد بازو یادش بره میدونست الان بازوشو میزنن میدونست دستشو میدازن آخ حسین حسین مد حسن هی آروم آروم مسیرش رو عوض کرد آروم آروم نزدیکل غمه رسید دی دیگه صدان نمیاد، من دیگه این برانه میخم چی شد یه متهور می لا الله هلالله بذار حرفی کی شب تا سوانه بزنم الان بزنم بابا من نمیگم این جمله مقتله اگه تا نداری پاشو برو من بیادی حرفو بزنم شاید محرم دیگه نباشم شار هزار تیر یه نفر رو نشانه بگیرن دیگه این بدن جای تیر نداشت یه تیر قبلی می کرد لا اله الله خوش بده خوش بده خوش بده عبارت مقتل میگه ابی عبدالله از دور دید سارت جلده کل قنفز لا اله الله من چی جور معنی کنم ای وای ای وای ای وای کی رو عصبه بدن مثل خار پشته پره تیره آه آه آه یه دفعه از بالای عصب افنا این یکی داره داد ویزنه اخ براده یارِ یگان آغداج یه, یه عمری منتظر بودم صدام بزنی دو جمله گفتم این دو جمله رو کی میتونه تفسیر کنه جمله اول و آی زهیری گفتن کسر از زهری یعنی چی اما جمله دوم به نظر من سخت‌تره اما این جمله اول معروفه. کسی جمله دومو نمیگه. گفت ان کسرن زهری و ان قطع استاد ما این جمله رو اینجوری معنی میکرد میگفت میدونی وان قطع الرجا یعنی چی؟ یعنی بیچاره شد. یعنی دیگه چارم از دست را